الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الله على سيدنا وسيده والاهل الطيبين الطاهرين المعصومين بلعط دائم الخار دارهم اجمعين اللهم اشفع علينا في در آگه ای که مرگوز بود به تشمه حلقالله اوجا داده شده بود به آیی که مرگوز بود به حنیفیت و از طبع ملت انتبه ملت ابراهیم حنیفه یه بحثی شد راجع به و حنیف و حنیف و حنکا و حنیفیه و از در این کتاب از فی پیسالی خلال حرم قبلد اسلام نسبت زمان این مقدار راجع به خنف در بس کرده و سعی شده که توبجیهاتی برای اصل کلمه اصل کلمه اونی که من سکر میکنم اصل کلمه عربی نیست حنفه در وقت عرب به معنای میلان هست کجی حنفه تا یعنی پاش کف شد یعنی پای راستش سوید چپ شد یه نوع اونطوری مثل حنف که از کردم حنف ابن قیز که شعرشم خونده. این هست اما نیست این لفظ هنفه که در مکه هم بوده بعد هم به مدینه رسیده در احتمال داره که لفظ هنفه و هنیخ و خونفا و احناف اصولت شد در تمام کشورهای در تمام مناطق عربیه اجاز و نجد و تحان و یمن و اینها این, این جریان داشته و یکی از اجابه در تفسیرش بله. ایشو اینجا که سریانی ها یخلقون لفظ هنفه بر سابعه آیا حال این لفظ سریانی، سوریانیه یا ایرانیه یا آرامی قدیمه خود من کردم سرم کراکشی خودم تحقیق مای کرده باشم اخلاقا اینجوریه که با آنها نهارو بیگم اونا رو میگیم نمیدونم شون که نیستی من نرفز سوریانی بلدیم ایرانی میگیم در این کتاب ها این دیو آمده چون خود ما اطلاع بر اون لغت و ادبیات اون لغت نداری به همین نقل احتفالون اما اگر این درست باشه یعنی این مطلبی رو که ایشون از یک مستر خارجی هم نعرف از دارت معارف هم ما معارف اسلامی نعرف کرده هاشه ایچه نوشته اگر این مطلب درست باشه به نظر من به که مشکل رو حل بکنه مشکل رو زیادتر بکنه به حل کرده چون یکی از مشکلات گه در قرآن هر رسول الله حنیف و اهناف الله، خود کلمه صابئه، چون صابئه در قرآن استعمال شده. هم علمای اسلام، هم حتی علمای شیعه، در این که مراد در صابئه کی هستن از سنی کافر از بودن، حتی وجوهی تا در نصارا، حالا این مثلا بوده صابئه یعنی احناف که بر دین ابراهیم باشه. چند دفعه واسه در عراق هم سر چ ض بیشترن هر روز صبح نه تو درجا خودش نمی می شوم کن رو آورتم. بینالت این صبحی میگن در ای بین ها صبحی به ادام هم در بین ابراهیم هستن. آیا واقعا همونطور که اینجا احتمال دا صبی و صابقر و احنا و هنقا یکی هم؟ من الان نمیگیرم فقط ن میکنم اهلا بصل بود. اینجا این اینجا نبشته. اما آیا واقعا این مطلب درسته یا درست نیست؟ ولی که من احساس میکنم اصل این کلمه عربی نیست حالا در لغت عربی میشه شبیه اون به کار برده شده اینو باعث به مبدی ارجاح شده و نتیجگیری به نظر من نباید درست باشه این مطلب نباید تکی باشه البته ایشان سعی کرده مطالب دراج به احناف رو از لفظ سبعه این حد حالا غیر از این جردی که ایشون نوشته این رو دیگه ما میزنیم. در کتاب تاریخ تلاحی سیره نیشان در ادهی از نصوص تاریخی در مکه این لغت به کار برده می شده حالا ایشونم بحث نهیده این دیگه می ده می ده می ده یا من خودم دیدن می روی مثلا در موضوع که وقتی که مشکنامه بودن مثلا لغت سبع محمد این داره این تعلیم رو سبع این احتمال که حنیفیت و تحنف و سابعه یک نوع دین ابراغیم بوده با این شاهد تاریخی با این سالان داریم با این تعبیر و سبعه زاهرم الازم با قراره نجیب کنم مثلا امست کرد دینشو برگشت موسط شد شبیه موسط یه چیزی شبیه موسط یه چیز معادلی مثلا احساس میکنه معادلش بخواست بگذاره یه چیزی معامل معادل برگشت از دین مثلا مشرکی دینی که در جزیره بود از اون برگرش اول این هست انصافش این دو تا لحظ هر دو با هم مشکل دارد هر دو و این اختصاص به این دولت نداره ما اصولا ببینید در تاریخ اسلام حواضح اخیر رو مال هجرت رو خیلی زبقش واضح دا حد زیادی و اگر از هست اختلاف نسبتا کمی اما مثلا اوائل هجرت باز مشکل دارید باز توی دورانه سیزده ساله به در مکه ما کلا مشکل داریم این کلا حالا خود عرب ها چون اهل زب نبودن اهل زب چا نبوده نبودن اگر بخوایم بخواییم در اینجای رو باید برگردیم به اخباری که بردها یا محسل هست یا سبب نداره یا مثلا ضعیفه یا باید اخبار عمل بکنیم یا باید این با بسته هست یک واقعا ابهام داره ظاهرا به خاطر این ابحامی که به لازه کتابت در انتشار نوشتا در زمان مثلا باز مثلا بین 40 سال تا ولادت پیغمبر باز ابحام بیشتر میشه از که اهل سر راجع به آبا اجداد خیلی از حوادث اهد اهل ما ابحام بیشتر میشه این نکترم اینجا از بکنم چون این خیلی مهمه چون الان در این که ایشون کردن انجام داده من کرار رو عرض کردم در تاریخ در نوشتارهای ما حتی مثل من رو نجاشیم کان اخباری یا علی اطلاع اصطلاح اخباری اینه مراد اخبار اخبار اینه اخباری که ما الان داریم استلاحی که هست این ها مرادشون اینه این در حوادث تاریخی یا در هر موردی هر چی روایت بود همون می آوردن حالا گایی معارض بود گایی بی محتوى بود بی معنا بود این این خود کتاب آقای دکتر جادرگی هم اخباری مسلک اخباری این معنا چه در مصادر نقل شده و خودش خودشون فهمیدی فهمیده که باید در می بخور از اینا لکن اصلا در مقابل این اصطلاحات محسرین یا محققین بود و این یک کار نبود که ما کرده باشیم از همون قرن سبوم، او اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم، که بحث بحث تحلیل روایی به لحاظ سند یا به یا تحلیل تندیده جاری شروع شد اینا تو تمام روایاتی که داخل این کار کردن مثلا از ابن عباسی مثلا ابن شد میاد این سر صحیح یا صحیح از ابو هریره رایت مثلا این کی خیال کنه از سیرن و تفسیر آیات اینا هر نقلی رو میادن اشراقی میکردن سندش رو بررسی متأسفانه الان در این کتاب این نیست در این کتاب یعنی ما الان بدون مراجعه به مصادر این کتاب نمیسیم خوبیم بکنیم مثلا پس یک مطلی در تفصیل تبریه مجموعه برد و اما اون طریق صحیح این بود حالا اگر در متن کتاب نقل میکرد لاعقل در خامش اون مصادر اولیه رو برم میکرد مثلا تبریه از کجا گرفتی؟ مجموعه برد از کجا گرفتی؟ اولا تسلسل تاریخی در مساله ما را می کن بعدا در می نشدن این مصدر از کجا آورده و روبیه رویهیه با اونا را ایتوفی بعد کتبه ایشون متعذفانه و اینکه بعد واقعا کرکاریه کتاب راید مفصل خیلی کرکاره ساخن زحمت زیاد کشی در اقوام و مختلف خیلی زحمت کشیده داره هم قابل اقتنانه لیکن خوب دقت بکنی و این مسلک اخباری ها تعجب آور باشه در خیلی از برس های اینکرام مستشر دارن همین مسلک اخباری آنگه این یک مسلک یه اصول هم از همین حالین ایرانی ها و ایرانی ها کتاب نوشتن اینها هم درست هم مسلک اخباری رو را مراد من از مسلک اخباری، یعنی هم تنبیه بکنن که این مقلب میشه چی بوده کجا بوده آیا قابل اعتبار حرف نیست یا حالا که برفرزم خودشون این کار نمی ماده آماده در اختیار محقیجین قرار بود که اگر خواست مراجعه کنه خیلی راحت باشه اینجور جمع کردن مساده خب این نمی تونه تاریخ رو کشف کنه ایشون قیل از این حالا یه مقداری سری کرده احناف رو و مثلا لا. چیزی که به اینا شایر بوده توحید بوده چیزی که به اینا نسبتا شایر بوده زبایه و حیواناتی که مقابل اسنام سر میگوریدن در مکه نمیخوردن چیزی که نسبتا بین اینها شایر بوده شراب نمیخوردن خیلی از کارها و بعد از کارها رو به بعد از اینها نشون میداده و نمیدونم آیا این بلید این مال همه ای اینها باشه ایشون متعرض اده ای از خود کتانی بودن که در جاهلیت به معنای به اصطلاح حنیف یا احناف شناخته شده بودن اده ای اسمانشون برده من الان این نکاتی رو راچه به این عرض می که الان روشن بودی یکی از این کسانی که هست زیده ابن نفیله تیگه از روز احنافه و معتقد بوده به دین حضرت ابراهیم و حتی مثلا ایشون اینطور میگفته در این صفحه 476, 472 اینجه بیده 6 472 مثلا ایشون از حرفایی که به ایشان نسبت داده شده یا منشه رو قریش اگه الله و قطر از سما خدا باران میفسته و یوم به تو بقل در این رو سرز میکنه و یک خلق و سائمه و رو خلق کنه فتر آفی و تزوهون غیر الله لغیر و غیر دیدیم بعد همین ویسفند برای غیر خدا میکشیم والله ما اهل ما علا زهر الارض اهل دین ابراهیم غیری اینی که از بزرگان احنافه انصافنم خیلی ازش ایشو مفسر راجعه بود چیزایی که به اصطلاح بوده به نام زید بن عمرو بن نفیل یا زید بن و ان شاء الله عرض از اجواب این بحث یک توضیح بیشتر بدهند بعضی از این احناف بچه‌هاشون با افراد بالغ هستند خیلی درarchive همین یکی همین زید چون گویا خودش یاد فراموش میکنن یکی از اشعر مبشره که مبشره که در کتب عرضه شده خیده بن خیلی مشهور نیست گویا مثلا سوال کردین این اصلا اینکه ای ای ای از این مجبول همین سعید پسر همین سعید ابن زید پسر همین به اصطلاح زید ابن نفیل که جز اشعه مبشر است و مسلمان شده جز مسلمان های بسیار قوی و معروف بعد حالا هم شعر من نمیخوام اونال بگم امدش اینه و روی انه اسماء ابن تقریده دختر بزرگ عبود بخته از آرش ده سال بزرگتر بود قالت لغدر ایخ زید ابن همر ابن نفیل مسندن زهرهو الى الكعبه یهو یا معشر قرش ولوی نفس زید بیده ما اصبح اهد منکم علا دین ابراهیم غیر مهغور تو که به اگر میدونن خیلی چه برشی پیش تو شع مطررف کرده الله با الله خیلی عجی ولا که میلا ال <سؤال> راحته او من علم و ن علم و هم باز و ثم یصل <سؤال> اعلان کردن این آرومی که بحث این حقیقت شریعی و لحظه صلاحی قبل از اسلامه قبل از اون خود کردن زیده نفل سمه یا سلیل از کعبه یه الادی الاغ ابراهیم و دینی دین ابراهیم بعد از اجایبی که از ایشان نقل شده از همین زیده نهام البته در این کتب احس کردن کتب این. تاریخی نقل کردن که حتی پیغن اکرم پزات میخوان زید آمد بعد از ذشت شاید شوراث از این عذاب بکند اینجاست که لا اكونو ممازوب هلن نوصو این حیواناتی که در مقابل بت ها شده من از اینها نمیخوام خیلی بریده آخه دیگه از پیغمبرت مصالح دین ابراهیم بوده اینکه یه مشخصه حالا این نقل متخرف رو آورده اینم برای ما خیلی تعجب آور اون چیزی که الان من کام تاکید بکنم یکی این که کردن از همین زیده نهمر نفه لبک رو درست میگفته اینم خیلی در عجیبی داره که ایشون در حج خودش این طور نگوزه لبک حقا حقا تعبدن و رقا البغره ارجو خال و هل محجر لمن قال تو مقال از تا به ما آده دیه اراهی مستقبل که بسی و هوا قاعد ولی چیزی دیگم لبک باز از این غریب تراجبی تر این شخص که قبل از اسلام بوده و قبل از به هم فوق کرده و ظلم انهو کان یراقب و شمس این خیلی عجیبه توی کعبه می آمده نگاه می به خورشید تا زوال بشه فعلا زالت بسر بلد کعبه بسر یه عجیبی زوال شمس که می و صدر سریزتین آغن نبیرون قدید ثم یبول حالی قبلت و ابراهیم و اسماعیم لا اعبد و حجرن ولا اصلی لح ولا آکل و مغربه لح ولا از سخصمون بالعزلام و انما اصلی لها و بیت حتی و کان یهچ فیقف به عرفه این رقوف عرفه هست تو مشین که انجام می دادن ها این که فیابول لبیت لا شریک لک ولا نزدرد اینم خیلی هجیده این این از اجایب من چند بار هم همینجا ارز کردم لبهی که معروف بین مشکیم بود لبه لا شریف که لک الا شریف که و محملک این لبهی که معروف جاهلی بود حالا از اجایب اینه که این شرق قبل از اسلام همون که صحیحی که ما میگفتیم میگفته. و از اجایب این استقبال شانس و مواظبت زبان شانس خیلی عالی چون این مطلب رو چون این مقاله با با مقابله چون در این مطلبی که در کتب اهل سنت هم ذکر شده زیاد ذکر تو تدریبی سیره نوش امام علی بود در پی عباس میگه من مردی امان اگر شبین جوانی هم باش بود، دیگه زنی هم باش بود، راق و شمس و ثواب و حل و, و بس داخل و صلی خلفه و امره. در صلوات خلفه و امره. بعد از عباس پرسیم چی گفتم که سرور محمده محمدلیس على ظهر الارض کسی که این نماز رو بخونه الا این بچه‌ای که با او زاین زن. این با مادر اول من صلی الله که، این در کتب اهل سنت این اینه که انسان در همین حالت خیلی عجیبا همین حالت قبل از غمبر اکرم به اینه به این شخص نسبت داده شده البته این مسئله چون یکی دیگه هم امیت ابن نهبی سلطه اینجا نرم میکنم من دیگه نیم متعرض بشن خود امیت ابن نهبی که از تحنافه و شعرم زیاد داره دیوان اتصالا چاک شده و اینجا بیشون نرم میکنه که بعضی از مشاورین اسمشون هم برده اصلا ما معتقدن چون یک شعری الان به امیه ابن ابی سعد نسبت داده شده که خیلی عجیب شبیه قرآنه ایشون اصلا میگن اینا از اسلامیه درستی نمیخواد بگه کسی که در اسلام نباشه اما بحثه اون رو اینو کیفیت بحث و جزاء تمام تو این شعره و ایشون هم منظور میکنه از یک بعضی از مشاورین اسمشون هم اینجا برده در صفحه که اصلا ادعا کردن که پیغمبر اکرم به اصطلاح موارد قرآن رو از این امیه گرفته ایشون نسیون هوا رو پاور به اصطلاح قایل حسن فتحه چار اصلا بین شعر امیه منصوب امیه و قرآن تقارب های هست که نسبت دادن که این مطلب ایشون هم اشاره داره این مصدب مصدب درستیه با تحریف تاریخی بشه این مطلب شد این عظمت قرآنه ایک از عظمت های قرآن این از که اگر شبهی بوده صحبتی بوده صاف مطرح شده در خود قرآن هست در سوره ولقد و لقد نعلم اینما یعلمه بشر لسان الهدونه اله اعجبی و حالا لسان عربی و مبین این که نصفت دادن نه آیات قرآن مم. به شخص غیر اصفیر نبر اصلا در زمان خود سهی قبر مطرحشی این خود مستشوری ها از اجایب کار اینه در هیچ متن تاریخی صحیحا یا زریفا به امیه نصفت داده نشده به زیده نصفت داده نشده یک بردهی بوده نسانی در مکی به نام جبر بگو نصفت شده که لذام قرآن بگی لسان در دونه اون دونه یا جاذ ج اون لسانان عجبی و حزار سان عربی و موبی این هم یکی از عجایبه که اصل مطلب که قرآن این آ مستکرشا مطلب جگیر گفته اصل مطلب تو خود قرآن آمده. لیکن از عجایب اینه که این دواعت از اهنا که خیلی کار خوشون شبیه اسلامه این مثلا ذیل نفر واقعا برای ما هم تعجه بازار که که می هم جلب کرده اسلام جل کرده. ده این بیاد مراقبت شمس و بعد نماز بخود تو سجده بکنه حالا رکوعش نشه نمیشه خیلی چیز تعجب آور و از عجایب کاری نثیه هیچ کس نه از یزدریو نه از اسلامین اوائل نه از کسانی که اشکال داشتن بر رسول الله به این دو نفر قرآن انسان نرد به شخص دیگه‌ای داره, داره اصلا که خود قران هم نکنه کنه بلغت نه علما نهم یا نه بولون انهم یا بولون انهم يعلموه بشر و این احتیاج به صفحه دیگرم داد چون می‌خوام یه ورده بحثی قرآنی بشن یه چیزی هم در, اون لغمه، لغمه بحثش بحثش بحثش در اونجا بود در این رها اینم چند کتب سیره امامان، مجله لغمان، کتاب لغمان ادعا کرده لازمام گرفت چون دیگه بحثش بحث دیگه سر اونجاست ببینین هر حال این زید بن امر بن نوفل، چون من می‌خوام این یاد بگیری رکس دیدین دسته تو این ادعی از احکام نقل کردم و این هم خیلی انصافاً یکی از کسانی که تشابهش خیلی زیاده همین زید یه نقداری به لحاظ افکار که خیلی تشابهش زیاد فوق العاده زیاده امیتب نهب سرده البته راجیب امیتب نهب سرد این زمان پیغمبر ذر کرد جز به بود که ادعا میکرد در جابلیت که در وین حرب پیغمبری خواهد آمد و من اونم ادعای پیغمبری میکرد که من اون خواهد بود اما هنوز رهن نشده ولی ازا وقتی با رسول الله حبورو شد قبول نکرد و ادعا شده جهات مختلفی بیشان ایشان نسی از دیوانش چاپ شده شعرهایی داره که اصلا تعجبابره خیلی با مقایی مقرآن نزدیکه که خدای جهاد علی احتمال میده که اینها ساختگی باشه بعضا خوصل ساختن. به ذهن من رو هم میاد هر دونید اینطور اما بعضی دیگرش وقت یه نبدال زیادیشون متعبض این هنفا شده و واقعا هم تعجبابره از مجموعه کارهای هنفا هم یک چیز خیلی واضحه قروی در این نادی که از این هنفعای که ایشون هم متعرض شده و نسبتا شرحال نسبتا مفصلی از اونه کرده شخصیست به نام ابو آمر راهی این ابو آمر راهی در محکه بوده و خیلی هم آقا مرد فوقعادهیست صافا هی پینچم البته این هم حالا من خواهم از کرد ازهی که معروفن به هنفع به نفسانیت هم هستن یعنی گفتن نفسانی هم. تنها از بعضی مشاورین که اینا معتقدند تهنوف یک طائفه از نصرانیت بوده، یا تقریباً شاخه‌ای از یهود بوده. اون‌ها هم یک طائفه از ن... این هم ما در تاریخش اشکار نشده. یعنی واضح نیست. مثلا ورقه لنوفره به نصرانیت نسبت داشته شده، به انیفه هم نسبت داده شده. این ابو عامر راهب، این هم از اون شخصیت‌های عجیبه در یهودنوفاس که خیلی مرد احتمالاً هم نسانی باشه خیلی مرد خوشفکر و دارن سفر کرده بوده این طرف اون طرف این تردباً کسی که گرد به اهد روانده همین شخصه این در مکه تشریف کرد گره شد برای جنگ با پیغمبر خب که از جنگ بسیار سنگین هم جنگ اهد بود دیگه یعنی که بخصر زهار رو بردنه اونا شده که اصلا رسول الله به سوا خودشون که رسیده به. و اگه مث در از این آمر راهب این همی که از شخصیفه عجیبه هم جد به ایشون کاملا با رسولان مباحثه کرد گفت من راهبم و الان دین ایبراهی من بر که تو کارهایی هستی که تو دین ایرانی نیست حالا این نمیخواب بازی از جایی به که این مسئله احضران داخت بعد ایشون برگشت رفت به طرف شام و طرف خیصر و از خواست که به مدینه حمله بکنه برای عرضه مولد و این قصه معلوم و زرارم کشونش اینه همه ابو عامر اینم خیلی عجیبه ابو آمر راهه اون قصه که این محصد درست بکنیم ما اینشالله حمله میکنیم می و رو میگیم یه بسیار و هم رو آماده کرد خیلی واقعا ایسی از شهرهای عجیب احناف عجیب، و باز هم از عجایب اینه که پسر اینه که از شعرهای مسلمان خیلی بانتوزه هنزله قصیل و ملاقیش نیستره از اینه اینا کسی که باییم تحصیب واری پدر حالا مثلا واقعا مرد روشنی بوده پسرش هم روشن بارانه و بعد عجایب اینه در زنگ اوغز ابا آمر راهر را کسی بود که در صحوح مشکی وجود داشت و تراح شنگ بود هنزله هم در صحوح مسلمان ها بود و حتی نزدیک بود که ابو سفیان رو بکشه اصلا با شمشیر شدید با ابو سفیان به قول شمشیرم بالا بود که بدنه خیلی لذی بود از پشت سرش شمشیر رو هدف قرار داد داخل بدن فلان الا شد دادنشو او کش او. اون رو کش که معظمی به انزله قتيل الملائکه پسر در ارتش اسلام در پدر از ارکان ارتش کوفه بود نه خیلی عجیبه باز این انزله که بنیان عبدالله رو محمد داره من اسمشه. این رفت مدینه در جریان کرده لازی که یزید احماده انجام میده پسرم نه هنزل از هنزل از هنزل از این سرم تاریخ غریبی او قیام علیه یزید رو او تنظیم کرد هر راه اصلی قیام علیه یزید که واقع احره آنی که مدینه مشارجون تو بقیه جرش رو ادو احره قدر همین پسر هنزل است. عبدالله ابن یا محمد ابن نه بنده. عبدالله بنده. عبدالله بنده. ایشان در اون جریان علی از گیاه بشیدن او اون هم باز این حنظله این حنظله سره اون ابو عامر راهب که ابو راهب تا آخر عمرش در خلافت رسول الله ارذام که تا مرد شام مرد داشت آماده میکرد که توسط قیصر ارتش رو آماده کنه و مدینه بیاره تا رسول الله و مثلا نستجی و الله این البته دیگه دیگه, دیگه من میخوام بگم بگم از برد ما کلن خارج میشه نه میخواهد بگم وجود این احنابه ایشان یه مقداری آراع اینها و احمال اینها و شعر منصول به اینها رو آورده چند تا نکته هست که اسفاینی ها اشتباه داره واضح نیست گاهی لغبه ها و نسب‌ها اینها واضح نیست مطالبی که به اینها نستر و اصولاً ابهامهای های فراوانی در زندگی اینها وجود داره و نمیدونیم حالا به خاطر اون جنب عمومی که در جاهلیت وجود داشت اینها ثبت نشده یا نقصی دیگر بوده الان برای ما روشن نیست به هر حال اجمالاً هنفا در مکه یک چهره در میان عرمت و بعد مدینه برد, برد. شناخیلاشون سفر می خیلیاشون کتابت بلد بودن تورات و انجیل خونده بودن لیکن خیلی به عنوان نصرانی حساب میشن مسیحی حساب میشن این هم باز برای ما رو نیست این دقیقا لیکن مجموعه اعمالی که این ها نسبت داده میشه این در خیلی هاش تشاغل با قرآن و تشاغل با اسلام داره این هم. اما نمیتونیم تحدیدن که مثلا بگیم دین این ها تحدیدن افکار این ها جنب های فکر اینها جنبه های عملی اینها دقیقت این بوده این رو الان دقیققا نمیش چست بود. و ای که ایشان ایشا متعرض نشدن غ بیان مص بریم ها که اون خیلی مهمه از ا جایایی به کاری است که بعد از اسلام دی کسی به نام حنیف نداریم. ای کاش این بح ایشان متعل می یعنی شده. ام احنافیی که ن کرد هنر با که نعمل کردن مال قبل از اسلام هن. مثلا بعد از پیغنبر زمان صحابه زمان امه علیه و سلام یکی تو بگم دین ابراهیم من هنیفم این هم چیز به غریبیه یعنی با آملن اسلام غیر از حال این چون مقدران برای همین حرف هم از این که اولاد فرزی از مسلمان شدند و بلکه صحابت قدرم خیلی چهرهایی مثل هنزره و مسلم سعید ابن زی من احتمالی که خودم میرم چون تاریخ و دقیقا در اینجا ببینید بیشتر نه ولی متاسفانه چون که نه ولی گفتم آخرین احناه کی بودن کسی دیگر جا کرد این بحث رو یکنات احتمال می‌دم بعد از آمدن بودن برای و بعد از تحریک کردن رجوع به تبراهیم و مسائلی که مربوط به رجوع به و بعد رو که باید نمبر کردن نماز و روزه و زکاتو چون بعد از اولشون داری داره که احناه در مکه روز همیگر است. چون مسلم جاهلی اونزه نمی گیرستن. بورو بعض رو تحت سنت اما ولی واضحی جاهلی روز می گرسن. اما داره بعد از می گیرن. از جنابت هم دیک دیگه نثار نشده. هم یک جور دیگه که برغم حالا دیگه چندم خاطر اون بحثشون هم در اصل هم بحث اهناف با ظهور اسلام تمام شد. عملا در تاریخ اینجوریه. عملا در تاریخ اینطوره و این معنیش که اون چه به عنوان حنیفیت مطرح بوده و تحنف مطرح بوده به نحو کامل و شاید و تام و متمامش در حسان مطرح شده به یه جایی نبوده که باید یک کسی پیدا بشه بیاد بگه که لا حجز دین ابراهیم غیبی این مسئله کلن تمام و در روایات ما هم تأکید شده شاید این عبارتی که در با استوبلحنیفیت سهل یا سمها هم اشاره به همین باشه چرا؟ چون ازدهی که قاضی از ما احنافیم روحبانی رهگانیت هم داشتیم لباسای خشن می تو کوها می با مردم ماهاش روحبانی می میکردن این لقدر فرمونید؟ فکر این نقطه این شد اونشه که از محاسن احناف که علم و عمل و ایمان و توحید و نماز و عبادت و هر کناس هم مزادر شرک و اینها که بود تمام اینها به اضافه جهات دیگری که منحیصم مجموع با امان سمحه سهله باشه در این شریعت مقدسه آمد که با حسابه حنیفی سهله هم داره سمحه هم داره سمحه هم داره این منشع شد که آثاری که به نام حنیفی قبل از اسلام موجود بود تحنق قبل از اسلام موجود بود کلی اون آثار ظاهرن دیگه منتفی شد و اجمال قدیه به استثنای ادهی از, از موارد که پیغمبر تغییر دادن مثلا پیغمبر اکرم کارش هسته با اینجا از دوزن ایشون حدود حرم رو مشخص دادن پیغمبر مواقعی تو براندن حج با عمر جدا بود عمر تو ماه رجب بود و حج تو ایام حج بود پیغمبر را ندخل از و پهل حج علای عمر جیامل. حج رو با هم جمع کردن که به الاخرین به استثناء ادره از موارد که تصریح شده که پیغمبر اکرم فرموندن در مقابل کاری که از فبرانی ظاهرش طوره که تمام اون آثار واقعی که در ذهن اون افراد بود با عنوان هنیفیت اینها تمام در قرآن آمده به اضافه صادقی و روشنی و روانی و اون چی که به لب زندگی بخور این که ایسان دواز خشم رو و هشت موجه رو تو کوها دلیه کنه با عهدی ملتقی نشه به اضافه این دستن در اسلام این تا اینجا حرف خوبیست انصالا تا این دهم و دیگه رو فترت الله تبر کن تو اوهای ناله کنسته به ملت ابراهیم حنیفن فترت الله حنیفی فتران ناس علیها و این به اصطلاح همینفیتی که مال ابراهیم بود این ظاهر این آیه مبارکی یک زیربنه برود که زیربنه شفرت الله یک روبنا هم داره که زال کردین و خیه تبینیم؟ زال کردین و بلا خاطه فطراتا لا حلیفت لا تبدیل لخلب الله زال کردین و یعنی بر اساس همون فطرت از کردم درم بحثی بودشته کلمه فطرت برنه شکافه شکاف اون شکافتنی که خدا شکافته که این مبناه و زیر بناس یعنی مقام ملاکات و اول که ممکن است فطرت الله مقام واقع باشه از کلمه اصطلاحیی بوده بوده سهد و سهد و خودمون چون عده از آیات نظر به واقع دارن عده از آیات جنبه های ملاکی دارن ما عاملی به فرقی اینجوری بودشیم که اگر آیات ناظر به واقع و تکلیم و حقیقت و حقیقتال هم و نقصال هم روش. من مندون نظری به زمینهای های این واقعی است و اگر همون امر واقعی رو به لحاظ زیر و به لحاظ زمینه تحبت و احکامی که بعد مخواد بار پشیم ملاقاته مثلا امر جال قوامون علم نسان به محفظلالله و بعضان این جنبه ملاقی است و به امر تکرینی محفظلالله و که این امر تکرینی رو زمینه قرار داده داره امر جال قوامون اگر یک امر تکرینی زمینه قرار بگیره برای یک تشتی این روش شده اگر زمین مثلا ما رب که به زلال منده در این های بنونه ایک عمر واقع نیست یا نه و ما رب و که به زلال منده در اشاره از زیر بناست زمینه از برای دین برای شریعت که شما بدونین شریعتی که ما جمع می‌کنیم، بیدید نه هم درش دلم نیست به قصد میکنم که بشه عمر ملا فرقه به این تعدیر سفتاً لا حالتی فتراً انصاباً به تکلیم میخوره لا تبدیل لخلق الله این تعدیر مناسب و تکلیم لیکن بلا فاصله بند و زن را لکه دین و حیر یعنی به عبارت مختار اینجور میفهمی این فکره یعنی حالا با استباهی بود یا اون چی که در کمون شیه هست یا اون که با قول تعدیر قدیم یا به نحوه قوه هست این باز میشه حالا خود این شکافه شدن و باز شدن اون چه حقیقتی داره این باز میشه اون چی که به اصطلاح ما از با بزرگ خناب میگیم اصطلاح قبضی ف... به نحوه قبضه هست به نحوه فعلیت میاد لیکن به نحوه فعیلیت صحیح مورود موردهی به وجود نمیاد میگه این مقال زر مثل نروح کوی پنشی شما اصطلاح داشت به چه یه داشت چه بود، این مورد به اصطلاح زلزله کوه نیست که مورد زان شدین و قیم کلمه قیم همی که از اصطلاحات اساسی در قرآن با معنای ماده قیام که آن ما اساسش اینه نه فقط به اصطلاح این موجود یک موجود زنده متكامل یعنی اون فکریتی که تمام جهات کمال درش مروعات شده دقیقاً به معنای اینه یعنی به عبارت دیگه شما یک دانه سو زمین باز میشه. ممکنه گیاه یه مزایش که درمون گیاه از زمین مختلف. اما نه این گیاه کاملاً بالا میره. کشتر را به سال ثابته اصل حافظ سم... فر آفل از اصل حافظ کلام. این کشتر را تین تیبه مبارکه ثابته این مراده از داده که ظاهرا و خیلیم به الله نتی فطر الناس عليهله ها لا تبدیل خل الله لاله کرد اینو اگر اینطور باشه و بنابرا اینکه این آیه تقصسی باشه ولی یا غیر نه خلق الله این از مجموع این دو آیه میشه اینطور فهمید ماد از تغییر خلق الله اون چیزی که مانعه اون دین قیه میشه و آمرت نه شیطان به اونها عمر میکنه فل یقیان نخلق الله در روایات ما آمده دین الله و آمده امر الله به ما عمره به که دین قیم باشه از اون برای هم دین قیم تفسیر شد به ملت ابراهیم حنیفه لذا این از این دو تا آیه مبارکه خیلی براحتی میشه فهمید. اون چی که به عنوان کردن یک مزای شده کردیم حنیفیت به این اشاره کردیم اونچه که خلاف اونها بوده اینها دستورات شیطانی هیست و که مرموز برد این مطلب جمع به این سایی ها به این تصویل نظر من مطلب تامیز هی جای بحث نذاره شب... الان شباهد تاریخی هم نشون میده که قرآن در این جب فوق العاده موفق عمل کرده چرا؟ چون اونچه که ما پراکنده از هنیفیت داشتیم بعد از اسلام کلن نداریم نه همون انناف هم دیگه قبول کردن که اون چیزی که عنوان ابراهیم بود حنیفیت بود همون دین غیری نیست که رسول الله برمون و اون که در مقابل او قرار بگیره امر شیطان است طلب امورن نما فدیه یهیون در خلق الله تغییر خلق الله اینا روشن اینا کلمه ها سر کلمه اتفاق الله همون بحث ها ان در یک روایت ما و در یک روایت اهل سنت اعفاولهی هم جز همین صفت آمده جز هنیفیت آمده اما در مشهور روایاتی که ما در هنیفیت داریم اعفاوله ها نمی شواهد موجود ما نمیشن تأیید بکنه که این کلمه اعفاوله ها بوده از کردم احتمالاً چون یهود هم به طبیعی ریششون رو گلند و اعفاوله ها میکردن، این منشه این شده شوده که این افعاله ها جزو سنن حضرت ابراهیم و جزء فسط الله قرار گرفته نشوده پس بنابراین تا اینجای بحث آیا و خلق الله اطلاق داره شامل تمام طریقات حسیون نه ظاهراً با تلینه روایات اینطور روایات سیاستانت نموزن با که منحیص المنجونش رو قبول کرد مراد از غیر خلق الله خلاف اون فطرت الله و خلاف دین قین ولی ادامه آیه بنابراین اضطرون ازن الان آن. چی هم قبلش نه و اون قبلشه اون یکی از کارایی که مشکل می‌کردن این منظور که که این این باشه به قرینه همون لا تبدیل خلق الله که در از اهل سنت در شمسو کردن پس تا اینجا رسیدیم که یک تمسو که به اطلاق آقایه در مطلب تبدیل خلق الله درست نیست قدر متعقن و واضحش در اون جاهایی که دین الهی باشه خطرت الله باشه دین قیم باشه و سنن هست ابراهیم باشه هنیفیت باشه این قدر متعقن و دو در این که آیا اعفاء الله ها هم جزء اینها بوده روایات متفاوته پیش ما هم روایت داریم که توش نیست تو روایت موثر داریم توش هست پیش اهل سنتان در بیشترش نیست در یک روایت واحده هست اما در بیشترش نیست و من هيث المجموع جمع شواهد موجود در درس فعلا موجود نیست البته مشرکین مکرش می‌ذاشتند به‌عصبه یهود هم می‌گذاشتند نصارا شد در زمان‌های مختلف مختلف بودند اما اونها داشتن اما این مقدار کافی نیست صلی الله علیه و محمد